تیم هوا تاریک بود که نیما رفیق علی را به خانه رفیق قدی متوسط، صورتی نسبتاً زریف، پوستی روشن، سبیلی کمپشت، موهایی تازه اصلاح شده انگشتانی باریک با ناخونهایی تمیز داشت شبیه پسرهای دانشکده خودمان بود مکسی در نگاهش بود که مرا دست پاچه می کرد. به چهار گوشه اتاق نظری انداخت دستها را به هم مالید و کنار بخاری که کتری رویش قلمی میزد نشست نیما چای گذاشت و من صفر راجلویش پهن کردم خونه چند تا اتاق داره؟ سوالش فرصتی بود تا دهان باز کنم چار تا این اتاق از همه دنشتره. دو دوتای اون طرف حیات از خونه همسایه دید دارن یکیشونو کردیم مهمون خونه همسایه ها رو میبریم اونجا همسایه بغلی کاری به کارمون نداره اما روبروی؟ نیما و علی مشغول خوردن بودند اما من یک ریز میزدم. به طرز کودکانه خوشحال بودم. اتاق کچیکه اونور برای حیات واسه کار انتشارات مناسبه. ما متکای زیادی هم خریدیم که بکوبیم به در و دیوارش تا صدا بیرون نره. تو چرا چیزی نمیخوری؟ سوال رفیق نشان میداد که پرحرفی کردم. خجالت کشیده و چایی را که نیما ریخته بود سر کشیدم. نیما لقمه ای را که در دهان داشت قرد داد و گفت رفیق سابخونه پیرزنه من و شیرین دو بار پیشش رفتیم. می گفت ها از ما تعریف کردن. رفیق همچنان چیزی نمی گفت. نمی فهمیدم. از آمدن به این خانه و هم تیم شدن با ما چه احساسی دارد؟ آیا مثل ما خوشحال است؟ قیافش خیلی جدی بود. او بود که مسئول تیم میشد. از اول هم معلوم بود که از ما دوتا با تجربه تر است. یک پرسید. توی خونه چه کتابایی داریم؟ به هر سوالی فکر کرده بودم جز این پریدم فهرس کتاب ها را از سر تاقچه برداشتم و به دستش دادم آن را با نگاهی سریع خواند و پرسید از لنین هم کتابی داریم؟ پس از مکسی کوتاه پرسید مثلا چه باید کرد؟ وقتی سکوت ما را دید پرسید تا حالا از لنین چیزی خوندین؟ از لنین چه خانده بودم؟ هیچ نام کتاب چه باید کرد با خاطره ناخوشایند در ذهنم گیره خورده بود در نوار کاسیتی که رهبری انشابیون از سازمان در سال پنجاه و پنج علیه مشه مسلحانه پر کرده بودند به این کتاب استناد شده بود با نوار فکر می کردم که نیما جواب داد که تا آن زمان کتابی از لنین نخوانده است او از من شجاعتر بود من قبل از آن که اعلام کنم که از لنین چیزی نخواندم خود را شت و سرزنش میکردم. آخر چه لنی نیستی هستم که حتی یک جزز لنین نخوندم. در میان آشنایانم به دنبال کسی گشتم که لنین را خوانده باشد اما نیافتم. یادم آمد اولین بار که با رضا دوستم بیرون رفته بودیم او مرا به انجمن ایران و شوروی برد. آن شب فیلم زندگی لنین را نشان می دادند رزا گفته بود که آنجا کتاب های لنین به زبان روسی یافت می شود اما حرفی از خواندن آنها زده نشد علی مثل معلمی بود که در شروع کلاس درس از شاگردان سوال می کند ما هم مثل شاگردان خطاکار نگران سوال بعدی اصلا چه کتاب های خوندید؟ چند تا اسم ببرید چه باید می مانند سر امتحان دست باچه شده بودم مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک نوشته مسعود احمدزاده را در خانه تیمی پوران خوانده بودم در آن تیم رفیق کیومرث مسئول تئوریک بود و می‌کوشید ضرورت مبارزه مسلحانه را ثابت کند به یاد نمی آورم. که کسی حرفی یا سوالی از این کتاب کرده باشد اگر علی از من می‌پرسید که خب تعریف کن که مسعود چه مباحثی رو مطرح کرده نمی‌توانستم حتی یک جمله در پاسخ او بگویم آن زمان در خانه پوران مطالعه برایم با طرح سوالی همراه نبود آیا لازم بود برای اینکه چریک شوم اینها را خوانده باشم سفره شام جلوی ما باز مانده بود علی و نیما مشغول صحبت بودند و من به این پرسش می اندیشیدم که چه کتابهایی را تا کنون خاندم. اولین بار کلاس نهم بودم که معلم مجله فردوسی را از همکلاسیم هم گرفت و گفت این مزخرفات چیه که می خونی؟ از پدرم پرسیدم قضیه این مجله چیست از آن پس گبه های من و پدرم درباره مسائل اجتماعی و بعداً سیاسی آغاز شد. او دوره های مجله کتاب هفته شاملو را در اختیارم گذاشت. مطالعه این مجله آغازی بود برای آشناییم با نویسندگانی چون رومن رولان، چخوف، کافکا، هدایت و دیگران. پیش از رابطه با سازمان، رومان های بسیاری درباره نابرابری، بیادالتی، شرایط سخت زندگی کارگران، ناتوانی زحمتکشان در اداره زندگی خود خانده بودم. چگونه فولاد آب دیده شد، بشر ژندهپوش پوش، جنگ شکر در کوبا، روز فرانس، مادر؟ به کتاب داستانی حماسی و قصه شجاعت‌ها ها، و قهرمانی‌ها بیش از کتاب‌های علمی اجتماعی علاقه داشتم تنها پس از آشنایی با رضا بود که او کتاب اصول مقدماتی فلسفه نوشته جورج پولیتسر و جامع شناسی آریانپور را برای خواندن به من داد و اکنون در خانه تیمی در برابر های علی نشسته بودم و می‌فهمیدم که برای چریک شدن باید کتاب‌های دیگری هم می‌خواندم برای چریک شدن تنها شجاعت اتخاذ این تصمیم، قبول خطر و گذشتن از زندگی کافی نبود. اینقدر عاقل بودم تا بفهمم دلایلم برای نخوندن کتاب‌های نظری قانع کننده نیست. در این فکرها بودم که علی از جیبش کتاب کوچکی را بیرون کشید. چه باید کرد؟ نوشته ی لنین. از فردا سه نفری اینو میخونیم جالب بود که او کتاب چه باید کرد را همراه آورده بود یعنی میدانست یا حدس میزد آن را نداشته باشیم مگر این کتاب چه ویژگی داشت که رفیق تا این حد خواندنش اسرار میکرد چرا می آن را به طور جمعی میخوااندیم؟ به این پرسش ها فکر می کردم. اما ایده مطالعه جمعی کتاب خوشحالم کرد اگر رفیق میگفت که هر کس خودش آن را بخواند، مطمئن نبودم که آن را دقیق بخوانم و بفهمم او توضیح داد در آغاز تشکیل سازمان هواداران باید از سه مرحله آموزش تئوریک میگذشتند تا به کادر مخفی بدل بشند بعدها به دلیل ضربه های پشت هم این مراحل از بین رفت و هر هواداری با هر حد از آموزش تئوریک به خونه مخفی تیمی منتقل شد. حالا بعد از زربه ها و مرگ رهبران، سازمان دوران بازسازی و خودسازی رو میگذرونه. بازسازی امکانات از دست رفته، خودسازی اعضا و کاترهای جدید. باید ما هم خود را چنان آماده کنیم که با بازگشای دانشگاه در پاییز، بتونیم دوباره فعال شیم فعلا تیم مطالعاتی هستیم. حرفهای رفیق شوق مطالعه و کار را در من می کرد. در مقابل خود انبوهی از کار میدیدم و دوست داشتم هرچه زودتر آنها را شروع کنیم. تیم ما از همان شب شکل دیگری به خود گرفت سفره را سریع جمع کرده و نوشتن برنامه روز بعد را شروع کردیم تمام کارهایی را که باید انجام دهیم روی کاغذ آوردیم و مسئول هر کاری را تعیین کردیم هر روز یک نفر وظیفه نظارت بر اجرای برنامه ها را بر عهده داشت درست کردن غذا، شستن ظرف و نظافت خانه هم با او بود خرید همیشه با من بود برخی کارها جمعی بودند، مثل مطالعه جمعی، غذا خوردن یا ورزش. برخی هم فردی مثل مطالعه فردی، تمیز کردن اسلحه یا شستن لباس. وقتی رفیق علی نبود، من و نیبا نگهبانی ساعتهای سر شب و صبح را میان خودمان تقسیم کرده بودیم. با آمدن علی، نگهبانی شب بین سه نفر تقسیم شد. صبح هنگام ورزش کنجکاو بودم ببینم آمادگی جسمی علی چقدر است؟ جسه متوسطش چیزی نشان نمیداد. ورزش کار بودن برای میار پشتکار سرزندگی و روحیه سالم بود. در دانشکده یک واحد ورزش داشتیم مربی پسرها و دخترها را تفکیک کرده بود. تمریناتی که به پسرها میداد سنگینتر بودند من با گروه پسرها ورزش می کردم. آخر سر هر نفر یک وزنه به دست گرفته هر چند باری که می میتوانست پله های سالن ورزش را بالا و پایین می میدوید دیگران نمیدانستند که من هفته ای دو روز صبح ها به سالن ورزش میروم و همه تمرینات را انجام دهم. نتیجه این بود که در پایان وقتی انرژی همه بعد از چند بار بالا و پایین رفتن از پله ها تمام می میشد و هر کس گوشه ای افتاد من توان داشتم بار دیگر از پله ها بالا و پایین بروم و روی همه را کم کنم پیش از آمدن رفیق علی من و نیما صبحها پانزده دقیقه ورزش سبک و بعد از ظهرها حداقل یک ساعت ورزش سنگین میکردیم حیکل نیما شبیه گیرها بود و تمرینهای سختی میداد سی تا كلاخپر چل تا هفشت پاهایم قوی بودند اما دستهایم نه نیما یادم داد که چگونه با دست شنا بروم و کنترل می کرد هر روز تعداد بیشتری شنا بروم. از همان ورزش صبحگاهی دیدم که رفیق علی حریف خوبی برای نیما است. بعد از صبحانه مطالعه جمعی شروع شد. همانطور که علی گفته بود من هیچ مطالعه کلاسیکی نداشتم. نیما دستکم کم تاریخی خوانده بود. و نقل قول های از تاریخ بیداری ایرانیان مشروطه کسروی یا غیره می او تاکید داشت تاریخ پایه فهم مسائل اجتماعی. علی از همین نقط بحث را آغاز کرد. خوندن کتاب های تاریخی مهم و لازمه. اما کافی نیست. ما باید ببینیم در کشورهای دیه روشنفکران چگونه آگاهی رو به میان توده ها بردن. مثلا در شوروی چه کردند؟ چه تجربهی دارند؟ چرا لنین بر تبلیغ سیاسی اونقدر تحکید داره؟ در چین یا کوبا کدوم شیوه به کار گرفته شده؟ اولین باری بود که این سوال ها برایم می شدند. همیشه فکر میکردم که به این سوال ها قبلا جواب داده شده و لازم نیست من با آنها فکر کنم. چگونه میتوان آگاهی طبقه کارگر رو آنقدر بالا برد که کارگران خود برخواسته و از حقشون دفاع کنند. به تجربیات مستقیم خود که رجوع می کردم، میدیدم با خواندن کتاب، گفتگو با پدرم و با بحث های سیاسی به مبارز علاقمند شده بودم. از اینکه پدرم با من درباره مسائل اجتماعی سیاسی حرف میزد احساس غرور میکردم. خود را از بازیهای کودکانه برادر خواهر کوچکترم کنار می کشیدم و با خواندن کتاب مشغول می کردم. در رویا خود را در کنار قهرمانانی می دیدم که در کتابها برای ادالت و در راه زحمتکشان مبارزه می کنند. پدرم که علاقه مرا می دید بیشتر توضیح می داد. حکومت های مستبد بر گرده مردم سوارند. مردم بیچاره و توده بیپناه رو که آگاهی ندارند به کار میکشند و دسترنج اونها رو به جیب میزنند. نتیجهش بیعدالتی، فقر، رنج و بدبختی برای مردمه اما پول و ثروت برای ثروتمندا هیچ راهی هم جز برچیدن این دولت ها نیست اولین بار بود که با کلماتی مانند خلق، طبقه سسمار و آزادی آشنا می شدم. هر روز شاهد صفح کارگران ساختمانی بودم که در میدانی نزدیک خانه ما انتظار میکشیدند تا شاید کسی آنها را برای کار صدا کند. یکی از آنها شوهر همسایه روبرویی بود که زنش برای همسایه ها رخت میشست. اوایل نمیدانستم که چرا شوهرش هر روز صبح در میدان مییسد؟ بعدها که دانستم، در دل آرزو می کردم تا آن روز کاری پیدا کند مادر بزرگم می گفت خاست خدا بوده که اونا فقیر بمونند و من نمی فهمیدم که چرا باید خدا چنین خواستی داشته باشد پدرم می گفت خاست خدا کدومه اگر دولت کار کارگرا باشه هیچ کارگری بیکار نمیمونه و سر گشن زمین نمیذاره. و من پدرم را قبول داشتم و در دل می گفتم یعنی میشه که هیچ کسی دیگه بیکار نمونه؟ پدرم در جوانی کارگر چاپخانه بود. با خواندن همان کتابهایی که چاپ میکرد با بسیاری از مسائل اجتماعی آشنا شده بود. او که جوانیش با سازمان جوانان حزب توده همکاری کرده بود، از کارهای جمعی، از های حزبی می گفت توی حوزه حزبی من بودم و یه کارگر ساختمون یه افسر وظیفه یه دانشجو. اصلا مهم نبود آدم از کجا میان چی کارن پدرشون که خواست همه برقراری دولت طرفدار زحمت و کارگران بود دولتی که به هر کس به اندازه کارش و به اندازه نیازش بده شیفت وار گوش میدادم. آرزو می کردم با آدم های آشنا شوم که فراتر از مسائل پیش پا افتاده زندگی چون گذران شب و روز به مسائل با اهمیتی مثل توجه به دیگران و اطرافیان و کوشش در جهت تغییر محیط بیندی پدر از تظاهرات خیابانی و درگیری با پلیس از روزهای فعالیت علنی حزب می گفت تظاهرات حزب بود رفته بودیم سرچشمه یه دو اوباش با تسمه و پنجه بکس زدن تو صف پاس بونا وایستاده بودن ما رو بر رو بر نگاه میکردن انگار نه انگار اعتراض کردیم که آقا تظاهرات قانونیه چرا جلو اینا رو نمیگیرید که خودشون هم با باتوم افتادن به جون ما اگه بدونی چه محشر کبرایی بود خون بود که از سر و کله بچه بیرون میزد در خیال خود را می دیدم که شعار گویان در خیابانها می دوم با سنگ به اوباش حمله کرده و از دست پاسبانهای باتون به دست فرار می کنم زمانی که خبر فعالیت سازمان چریک فدایی را از رادیو میهن پرستان شنیدم با خود گفتم این بار با اسلحه در مقابل دشمنان می استیم. دیگه در تنهایی عشق نخواهیم ریخت و کار ناتمام پدرانمون رو تمام میکنی. کنی در حقانیت مبارزه فدایان تردید نکردم برای پذیرش آن نه نیازی به استدلال های داشتم و نه به نوشته های مسعود احمدزاده خوشحال بودم جنبشی که آرزوی پیوستم بدان را داشتم شکل گرفته است باید به فدایان میپیوستم. نیما نمیدانم چه مسیر مطالعاتی را طی کرده بود یک بار شنیدم که تعریف می‌کرد از بچه ها کتاب می‌گرفتم و می‌خوندیم مثلا شناخت مقوله‌های فلسفی بکیوان جزوه های بیت سرخی نامه‌های پدری به دخترش از نهرو از میمون تا انسان و اینا گاهی هم جمع می‌شدیم و راجبشون بحث می‌کردیم اما هر بار دل تو دلمون نبود که الان یکی بره و خبر بده بعدشم هم که بعضی از بچه‌ها رو گرفتن رفیق علی از روی کتاب میخاند، تکه تکه مکس میکرد و گفته های لنین را به طور ساده توضیح میداد. لنین در جامعه روسیه با این سوال مواجه بود که در مقابل اون همه اقب موندگی طبقه کارگر و اختناق حاکم بر روسیه چه باید کرد؟ و از کجا باید آغاز کرد؟ اون پیشنهاد روزنامه سراسری رو داد. که به دست کارگران برسه و درباره زندگی خود اونها بنویسه همیشه علی بود که سوال می کرد من نیما هم بیشتر با او به بحث می نشست. من تنها گوش می دادم و گاهی هم حواسم آنچنان پی جواب سوالها و فهم واژه ها می رفت که گفته های علی را نمی شنیدم. بسیاری از مباحث را برای اولین بار می شنیدم و برخی اصطلاحات و واژه ها برایم تازه بود سیاست تری دی ویونیسی ها بورژوازی کمپرادور رفتار علی طوری نبود که مرا به سوال کردن تشویق کند بعد از جلسه سوال هایم را در فرصت هایی با نیما در میان می گذاشتم او بی آنکه مرا از سوالی که می کردم شرمنده کند با سادگی جواب میداد گاهی هم می گفت خودم هم نمیدونم در یکی از گفتگوها گفت میدونی چه آدمایی برای من با ارزشند فکر کردم حتما میخواهد بگوید کسانی که خیلی مطالعه کردهاند اما او ادامه داد کسایی که بیشتر سوال می کنن. از جوابش مات ماندم کسایی که سوال می یعنی انقدر فهمیدن که یه سوال واسه شون تر شده اشتباه نکن سوال تو منم به فکر فرو می بره. وقتی دید هنوز با تعجب نگاهش می کنم گفت زیاد محو کسایی که راجب همه چیز اظهار نظر میکنن نشو خودشون هم اغلب راجب موضوعی که ازش حرف میزنن هیچی نمیدونن هیچگاه به این صورت به قضیه نگاه نکرده بودم او در من این حس را به وجود نمی آورد که از ندانستن چیزی خجالت بکشم رومت می مستم چه گفته بهارون گله سرخ خورشید باز اومد خرشید و شب شد گریزون گله سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون کوالو دزورا لاله لهو ویدورا کوه دارن گل گل گل آفت آبم میکرند، تو کوه ها دارن گل گل گل آفت آبم میکرند، تو یک کوه است و دلش بیداره، تو فنگو گل آگر توی سیناش جون جون جون یه جنگل ستاره داره جون جون یه جنگل ستاره داره یه جنگل ستاره داره جون جون یه جنگل ستاره داره